کتاب آخ بازخانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام چون یاران حسین کشته شدند و غیر اهل بیت او کس نماند گرد هم آمدند و یکدیگر را ودا می کردند و دل بر مرگ نهادند و ایشان فرزندان علی و جعفر تیار و عگیل و اولاد حسن و اولاد خود حسین بودند. علی اکبر پسر حسین پیش رفت و مادرش لیلا بنت عبی مرت ابن عروت ابن مسعود ثقفی بود و از نیکو سورت ترین و زیبا خلقتترین مردم بود. از پدر خیش اجازه خواست که به جنگ رود. او را اجازه داد. اونگاه با اومیدی بدون گریست و شاش به زیر انداخت و بگریست انگشت اشاره سوی آسمان بلند کرد و محاسن روی دست گرفت گفت خدایا گواه باش بر این قوم که جوانی به مبارزت آنها بیرون رفت شبیه ترین مردم در خلقت خوی و گفتار به رسول تو هرگاه مشتاق دیدار رسول تو میشدیم نگاه به روی او میکردیم خدایا برکات زمین را از ایشان بازدار و آنها را پراکنده ساز. جدایی افکن میان آنها. هر یک را به دیگر دار و والیان را هرگز از ایشان راضی مکن که ما را خواندند تا یاری ما کنند، اکنون بر ما تاختند و به کارزار پرداختند. بانگ بر عمر سعد زد که خدا رحمت تو را قطع کند. و هیچگاه بر تو مبارک نگرداند و بر تو کسی گمارد که بعد از من در بستر سرت را ببرد همچنان که رحم مرا بریدی و پاس قرابت مرا با رسول خدا نداشتی آنگاه به آواز بلند این آیت تلاوت کرد اِنَّ اللَّهَ نوحا و وَنُوهَنْ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمران عَلَى الْعَالَمِينَ زرریتم بعضها من بعض والله و الله و علیم خدا که شنوا و داناست آدم و نوح و خاندان ابراهیم و امران را بر مردم جهان برتری داد آنها از یک نسلند و در خوبی ها مثل هم علی ابن حسین آن سپاه تاخت و این رجز می من علی پسر حسین ابن علیم به کعب سوگند که ما به پیام بر از شمر و شبس آنقدر با شمشیر بر شما میزنم تا کت شود و بتابد. امروز از پدرم حمایت میکنم. به خدا که نشاید فرزند بی ریشه بر ما حکم کند. چند بار بر سپاه تاخت، دوازده بار و بسیاری بکشت تا مردم از بسیاری کشتگان به خروش آمدند. با تشنگی صد و بیست مرد بکشت و بعضی گفتند هفتاد مبارز بینداخت. نزد پدر بازگشت زخمهای بسیار بدور سیده گفت ای پدر تشنگی مرا کشت و سنگینی آهن تاب از من ببرد شربت آبی هست تا بر دفاع دشمن قوت یابم حسین گفت ای فرزند، زبان خود را نزدیک آور زبان او را در دهان گرفت و بمکید و انگشتری به دوداد که نگین در دهان نه و گفت به جنگ دشمن بازگرد که امیدوارم پیش از شام جد و جامی پر به تو بنوشاند که دیگر تشنه نشوی. او باز میگشت و میگفت جنگ است که گوهر مردان را آشکار میکند و درستی دعاوی پس از جنگ روشن میگردد. به خدای پروردگار عرش که از این دسته های سپاه جدا نمیشویم مگر تیغها در نیام برود. کشتگان او به تن رسید اهل کوفه از کشتن علی اکبر پرهیز میکردن مرتبن منقذ عبدی او را بدید و گفت گناه همه عرب بر گردن من اگر این جوان بر من گذرد و من پدرش را به داغ او ننشانم بر او بگذشت و با شمشیر میتاخت مره ناگهان نیزه بر پشت او فرو برد و تیری در گلوی او آمد و گفت. و علی در خون خود بغلطی دست در گردن اسب آورد و اسب او را سوی لشگر دشمن برد و آن مردم بر او ریختند و با شمشیر می زدند و او را پاره پاره کردند وقتی روح به هنجر او رسید به بانگ بلند گفت ای پدر این جد من پیغمبر است که جامی پر به من نوشانید که دیگر تشنه نشوم و گفت العجل العجل! بشتاب بشتاب که را جامی آماده است و این ساعت آن را بنوشی بیفتاد حسین بیامد و بر سر علی بیزداد روی بر روی اونها حمید ابن مسلم گفت آن روز این سخن از حسین شنیدم که میگفت خدا بکشد آن گروهی را که ترا کشتند چه دلیرند بر خداوند رحمان و بر شکستن حرمت پیغمبر اشک از دیدگانش روان گشت و گفت بعد از تو خاک بر سر دنیا صدای حسین به گریه بلند شد و کسی تا آن زمان صدای گریه او را نشنیده بود زینب خواهر حسین شتابان بیرون آمد و فریاد میزد: آه برادرم ای دریغ پسر برادرم آمد تا خیش را بر او افکند حسین او را بگرفت و به خیمه بازگردانی و جوانان را فرمود برادر خیش را بردارید و ببرید، او را از میدان برداشتند و نزدیک خیمهی که جلوی آن کارزار میکردند نهادند و او اول شهید از اهل بیت بود عبدالله ابن مسلم ابن عقیل به مبارزت بیرون آمد و رجز می خاند. مادرش رقیه دختر علی ابن عبی طالب بود 98 تن را در سه حمله بکشت امر ابن سبیه سیداوی بر او تیری افکن. عبدالله دست بر پیشانی نهاد که سپر تیر شود تیر دست او را سوراخ کرد و بر پیشانی بدوخت چنان که نتوانست آن را جدا کند گفت بار خدایا اینان ما را اندک یافتند و خار کردند آنان را بکش چنان که ما را کشتند پس مردی دیگر اسد ابن مالک با نیزه آهنگ او کرد و سنان در دل او فرو برد محمد ابن مسلم ابن عقیل را هم ابو مرهم ازدی و لقیت ابن عیاس جوهنی بیانداختند. مردم از همه سوی آنها را فرو گرفتند اون ابن عبدالله ابن جعفر ابن طالب بیرون آمد و مادرش زینب عقیله دختر علی ابن طالب بود سه سوار و هیجده پیاده را بکشت عبدالله ابن قطبه تایی به نهانی بر او تاخت و او را بکشت محمد ابن عبدالله ابن جعفر ابن طالب بیرون آمد به جنگ مادرش خوسا دختر حفظ از بنی بکر ابن وائل بود میخواند از این دشمنان که پست و دلند به خدا شکایت میبرم قرآن را تحریف کردند و کفر و سرکشیشان را نمودند ده نفر را بکشت عمر ابن تیمی بر او تاخت و او را بکشت. عبدالرحمان ابن عقیل ابن عبی طالب رجز میخاند و هفده سوار را به خاک انداخت. عثمان ابن خالد جوهنی و بشر سوت همدانی بر او تاختند و او را بینداختند و جامعهایش را ربودند. جعفر ابن عقیل ابن عبی طالب به جنگ بیرون شد و او دوتن بکشت و به قول دیگر پانزده سوار عبدالله ابن عذره خسمی تیری بر او افکند و بشر ابن سوت همدانی او را کشت. عبدالله ابن عقیل به جنگ شد. قاتل وی عثمان ابن خالد جوهنی و مردی از همدان بود. محمد ابن ابی سعید ابن عقیل را لغیث ابن ایاس جوهنی تیری بیافکند و بیفکند. حسین گفت: خدایا، شماره اینها را برگیرانها را پراکنده ساز و بکش. و هیچ از آنها باقی نگذار و هرگز آنها را نیامرز ای اموزادگان من شکیبایی کنید ای اهل بیت من صبر کنید که بعد از امروز ذلت و خاری نبینید هرگز از فرزندان عقیل نه تن با حسین بودند و کشته شدند و مسلم از همه دلیر تر بود چون حسین قاسم ابن حسن ابن علی را دید به جنگ بیرون آمده در آغوشش گرفت و با هم گریستند، چندان که بیهوش شدند، از حسین دستور جهاد خواست از نداد آن جوان بر دست و پای ام افتاد و بوسه میداد تا ازن گرفت و به جنگ بیرون آمد و عشق بر هایش روان بود و پیش از وی برادرش ابوبکر را عبدالله ابن اقبه غنوی بکشته بود و قاسم جنگی سخت پیوست چنان که با خوردی سی و پنج مرد بکشت و این رجز میگفت گفت بی تابی نکن که آدمی رفتنیست و امروز خدایی را که صاحب بهشت هاست دیدار می کنی حمید ابن مسلم گفت پسری به جنگ ما بیرون آمد گویی رویش پاره ماه بود شمشیری در دست پیراهن و ازاری در بر و نعلین در پای داشت که بند یکی گسیخته بود فراموش نمی کنم که آن نعل پای چپ بود امر ابن سعد ابن نفیل ازدی گفت به خدا سوگند که بر او حمله کنم من گفتم سبحان الله این چه کار است که تو خواهی کرد آن گروهی که بر گرد ویند وی را کفایت کنند گفت والله بر وی حمله کنم حمله کرد و بتاخت ناگهان با شمشیر بر آن جوان زد که به روی افتاد و گفت امو حسین سر برداشت و به تیز تیز نگریست چنان که باز سر بر می دارد و تیز می نگرد اونگاه مانند شیر خشمگین حمله کرد و امر را با شمشیر بزد امر دست را سپر کرد حسین دست او را از مرفق جدا کرد فریادی زد که سپاهیان شنیدند. سواران اهل کوفه تاختند تا امر را از دست حسین برهاند چون سواران تاختند. سینه اسبان با امر برخورد و او بیفتاد و اسبان امر را لگت کوب کرد. چیزی نگذشت که جان بداد گرد فرونش هست. حسین را دیدیم بر سر آن پسر ایستاده و او پای بر زمین می و می دور باشند از رحمت این قوم که ترا کشتند و جد تو دشمن ایشان باد روز قیامت به خدا سوگند به ام تو سخت گران آید که تو او را بخوانی و اجابت تو نکند یا اجابت او تو را سودی ندهد امروز کین جوی بسیار است و یاور اندک او را برداشت بر سینه خود و گویی همکنون می نگرم دو پای آن پسر بر زمین کشیده می شد و حسین سینه او را بر سینه خود نهاده بود من با خود گفتم میخواهد چه کنم او را آورد و نزدیک پسرش علی ابن حسین نهاد با کشتگان دیگر از اهل بیت خود که بر گرد او بودند پرسیدم این پسر کیست؟ گفتند قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب عباس ابن علی بسیاری کشتگان اهل بیت بدید با برادران مادری خود عبدالله و جعفر و عثمان گفت ای فرزندان مادر من جانم فدای شما پیش روید تا من اخلاص شما را در راه خدا و رسول ببینم شما را فرزند نیست تا غم فرزند خورید همه با هم پیش رفتند و جلی حسین بیست دادند به روی و گلو و سینه او را از دشمن حفظ می کردند عبدالله پیش رفت و رجز خواند کارزاری سعب کرد او آن روز 25 و ساله بود. او و هانی ابن سبیت حزرمی دو ضربت رد و بدل کردند و هانی او را بکشت. پس از وی جعفر ابن علی پیش سپاه رفت و رجز خواند خولی ابن یزید اسبهی تیر بر شقیقه یا چشم او افکند. هانی ابن سبیت بر وی تاخت و او را بکشت. عثمان ابن علی به مبارزت بیرون آمد. رجز خواندن گرفت. 21 و ساله بود. و راهی را که دو برادر برفتند او نیز برفت خولی ابن یزید اسبهی بر او تیر یفكند و از پای در انداختش تیر بر پهلوی او نشست و از اسب افتاد سر او را جدا کرد و آن را نزد عمر سعد برد و گفت انعام و پاداش مرا بده گفت انعام از امیرت بطلب یعنی از عبیدالله پیادهگان از راست و چپ بر آن حسین که مانده بودند بتاختند و آنها را کشتند مردی از بنی عبان تیری بر محمد ابن علی ابن ابی طالب افکند و او را بکشت و سرش برداشت عبو بکر ابن علی ابن ابی طالب به مبارزت آمد و میگفت پدرم علی پر افتخار و بزرگوار از دودمان حاشم که بخشنده و کریم بود این حسین پسر پیامبر خداست که ما با نیزه های سیقل خرده هواداریش میکنیم. جانم فدای برادری که جوان مرد و گرامی است او را در جوی کشته یافتند و معلوم نشد قاتل او چه بوده است گویند مردی از همدان و بعضی گویند رجذب بدر جهفی و بعضی دیگر گویند عقبه قنوی او را شهید کرد حسن ابن حسن معروف به مصنا در آن روز پیش امش جنگ کرد و هفده تن بکشد و هجده زخم به تو رسید. بی افتاد. اسما ابن خارجه او را برداشت و گفت به خدا قسم دست کسی به پسر خوله نمیرسد و خوله دختر منظور مادر حسن فزاری بود و با اسما ابن خارجه فزاری از یک قبیله بودند و گویند حسن زخمی خطرناک داشت. اسما او را به کوفه برد و علاج کرد تا بهتر شد. انگاه او را به مدینه روانه کرد حسین گفت جامعی برای من بجویید که کسی در آن رغبت نکند تا مرا برهنه نسازند شلواری کتاها آوردند گفت نه این لباس ضلت است جامعه کهنه برداشت و آن را بدرید و زیر های خیش پوشید آنگاه شلواری از هبره خواست محکم بافته از بافته های یمن که چشم در آن خیره می‌شد آن را چند جای بدرید و بش تا از تن او بیرون نیاورند چون با حسین نماند مگر ستن از اهل بیت او روی به آن قوم ها را میراند و دور می‌ساخت و آن ستن حمایت می تا کشته شدند. عباس ابن علی پیش روی حسین ایستاده بود نزدیک او جهاد می کرد. و حسین به هر سو می گردید با او بود و خیش را سپر برادر کرد هر جا برادرش بود از حسین جدا نمی شد. و عباس مردی زیبا و, نیک و روی بود چون بر اسب بلند سوار می شد، پای او بر زمین می کشی. و او را قمر بنی هاشم می گفتند و علمدار حسین بود او بزرگتر فرزند و ام بود عبالحوزیل سکونی گفت حانی ابن سبیت حضرمی را در مجلس حضرمیان نشسته دیدم در زمان خالد ابن عبدالله پیری سال خورده بود می گفت من از آنها بودم که در مقتل حسین حاضر بودند. ده مرد بودیم همه عصب سوار ناگاه پسری از آل حسین بیرون آمد چوبی از ستونهای خیمه در دست داشت، ازار و پیراهنی در بر، ترسان بود، به راست و چپ می گویی اکنون می بینم که چون سرخیش میگردانید گردانید های گوشوارش می لرزید، ناگاه مردی تازان بی آمد تا نزدیک او شد، از روی اسب سوی او بگردید و آن پسر را با شمشیر دونی کرد. زنی از زنان به دومی نگریست و از غایت دهشت چیزی گفتن نمیتوانست و زبانش بند آمده بود. سکونی گفت کشنده آن پسر خودهانی بود و نام خود را سریح نگفت و پوشیده داشت. بر حسین بتاختند و بر سپاه او غالب گشتند. تشنگی بر او مستولی شد. بر بند آب بالا رفت و آهنگ فراد کرد. برادرش عباس پیشا پیش او میرفت. عمر ابن سعد عمرو ابن حجاج را با 500 سوار بر شریعه فرستاد و سواران راه بر ایشان بگرفتند زرعه ابن عبان گفت وای بر شما میان او و فرات حائل شوید و مگذارید بر آب دست یابد. و خود اسب برانگیخت و مردم در پی او رفتند تا میان او و فرات حائل شدند. حسین گفت خدایا او را تشنه گردان. زرعه خشمگین شد و تیر یفکند که زیر چانه حسین نشست حسین تیر برکند و دست زیر هنک بگرفت هر دو دست از خون پر شد و آن را ریخت گفت خدایا سوی تو شکایت میکنم از ازان چه با پسر دختر پیغمبرت میکنند دیری نکشید که خداوند تشنگی را بر زرعه مسلط کرد و او هرگز سیراب نمیشد قاسم ابن اسبق ابن نباته گفت گاهی من خود از آنها بودم که وی را پرستاری می کردیم و رنج او سبک میگردانیدیم. آب سرد برایش می آوردند آمیخته با شکر و تاسهای پرشیر و کوزه ها از آب. او می گفت آبم دهید که تشنگی مرا بکشد. کوزه یا تاسی به او میدادند دادند که یکی از آنها خانواده ای را سیراب می کرد. او می و چون از لب خود برمی‌داشت اندکی بر پهلو میافتاد باز می‌گفت وای بر شما مرا آب دهید که تشنگی مرا بکش. به خدا قسم که نگذشت مگر اندکی که شکمش چون شکم شطر برآمد و آماز کرد و آن مرد ابانی فریاد می‌زد از گرمی و سوزش شکم و سردی پشت حسین به جای خود بازگشت و تشنگی بر او سخت شده بود مردم گرد عباس را بگرفتند و او را از حسین جدا کردند. عباس به طلب آب رفت بر او حمله کردند. او هم آنها تاخت و میگفت: از مرگ نمی ترسم آنگاه که بانگ زند چنان می جنگم که میان جنگاوران پوشیده شوم از خاک جانم فدای آن جان برگزیده پاک عباسم من که با مشک میایم و از گزند و زخم خصم باکی ندارم آنها را پراکنده ساخت زید ابن رقات جوهنی پشت خرمابنی بونی کمین کرد حکیم ابن تفیل سنبوسی یاور او گشت و شمشیر به دست راست عباس زد عباس تیغ به دست چپ گرفت و حمله کرد رجز می خوند. اگر دست راستم را بریدید قسم به خدا از دینم دفاع میکنم هنوز و از امامم که فرزند پیامبر پاک امین است و کارزار کرد تا ضعف بر او مستولی گشت زخمهای سنگین وی را رسید و از حرکت فرو ماند زید بن از پشت درخت خرما بر دست چپ او زد عباس گفت ای نفس نترس از کافران و به رحمت خدای جبار دل خوش بدار و تو را به همراهی پیامبر مجده باد خدایا اینان بریدند دست چپم را آنان را به گرمای آتشت بسوزان مردی بر او حمله کرد و به گرزی آهنین بر فرد سر او کوب که سر او بشکافت و از اسب بگردید فریاد زد یا ابا عبدالله علیکم السلام چون حسین او را بر کنار فرات بر زمین افتاد دید بگریست گفت اکنون پشت من شکست و چاره هم کم شد قبر او نزدیک شریعه است همان جای که کشته شد خون عباس در قبیله بنی هنیفه است و آنگاه که کشته شد سی و چهار سال داشت هرگاه دشمن بر اصحاب حسین احاطه می کرد عباس می و آنها را میرهانید. وقتی عباس رفت و کشته شد لشگری باقی نمانده بود مردی را که در کربلا با عمر سعد بود گفتند، وای بر تو چگونه زرریت پیغمبر خدا را کشدید، گفت، سنگ زیر دندان تو باد، اگر تو هم با ما بودی و آن چه دیدیم می دیدی، همون که ما کردیم می کردی، گروهی بر سر ما ریختند، دست به دستی شمشیر، مانند شیر درنده، سواران را از چپ و راست به هم میمالیدند و خیشدن را به خود در مرگ میافکندند. امان میدادیم نمیپذیرفتند به مال رغبت نداشتند میخواستند یا از آبشخور مرگ بنوشند یا بر مرگ مستولی گردند و اگر ما دست از آنها بازداشته بودیم جان همه افراد سپاه را گرفته بودند ای ما در مرده اگر آن کار نمی کردیم، چه می کردیم؟